امروز مقاله‌ای در مورد امتحانات دانش آموزان خاندم. فصل امتحانات نزدیک است. ماه خرداد ماه امتحانات است. دوره‌های آموزشی در ایران چگونه است؟ باید برایت توضیح بدهم. از کجا شروع کنم؟ از دبستان میگویم بگو. بچه های شش ساله قبل از دبستان به کلاس پیش دبستانی می روند. کلاس پیش دبستانی اینجا چگونه است؟ در کلاس پیش دبستانی بچه ها اعداد، نقاشی و چیزهای مختلف یاد می گیرند. دوره دبستان در ایران چند سال است؟ دبستان پنج سال، کل میکشد. خاندن و نوشتن، ریاضی، علوم، اجتماعی و قرآن های دوره دبستان هستند. به این ترتیب در ایران بچه های هفت تا دوازده ساله به دبستان میروند بله. پس از دبستان مدرسه راهنمایی شروع می شود. بچه ها سه سال در مدرسه راهنمایی درس می‌خوانند.